بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره خدا را هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است همیشه و پاکی یاد می کنند پادشاهی از آن اوست و همه ستایش از آن اوست و او بر همه چیز تواناست اوست که شما را آفریده است پس بعضی از شما کافرند و بعضی از شما مؤمن و خداوند به آنچه می کنید بیناست آسمان و زمین را به حق آفرید و شما را تصویر کرد و صورتهای شما را زیبا گردانید و به سوی اوست بازگشت آنچه را در آسمان ها و زمین است می داند و نیز آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار می کنید می داند و خداوند به آنچه در سینه هاست داناست آیا داستان کسانی به شما نیامده است که پیش از این کافر شدن و سزای کار خود را چشیدن و برایشان عذاب است دردناک این به سبب است که پیامبرانشان برای ایشان نشانهای روشنی می آوردن ولی می گفتند آیا انسانهای ما را رهنمایی می کنند؟ پس کافر شدند و روی گردانیدند حال که خداوند به اطاعت و ایمانشان نیازه نداشت و خداوند بی یاد ستود و ستوده است کافران پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد بگو آری و قسم به پروردگار من که یقینا برانگیخته می شوید سپس به حقیقت آنچه انجام می دادید آگاه ساخته می شوید و این کار بر خدا آسان است پس به خدا و پیانبر او و با آن نوری که نازل کرده ایم ایمان آورید و بدانید خدا به آن چی می کنید یادآور شوید روزی را که شما را برای روز اجتماع گرد می آورد. آن روز روز غبن و زیان است و کسی که به خداوند ایمان آرد و کارهای نیکو انجام دهد خداوند از او تمام بدیهای او را می زداید. و او را به با هایی که در زیر درختان آنهای جویبارهایی جریان دارد داخل می سازد در آنجا جاودانه به سر می برند این است پیروزی بزرگ و آنانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند ایشان اهل آتش یعنی دوزخند در آنجا همیشه به سر می برند و دوزخ چی بد جایی بازگشت است هیچ مصیبتی نمی رسد جز به اجازه خدا و هر آنکه به خداوند ایمان آورد خداوند دل او را هدایت می کند و خداوند بر همه چیز داناست و خداوند را فرمان برید و پیامبر را فرمان برید و اگر رو بگردانید پس کار پیامبر ما صرف رسانیدنی پیام است به گونه آشکار خداوند جز او معبودی نیست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند ای مؤمنان، بیگمان بعضی از همسران شما و برخی از اولاد شما دشمنان شما اند لذا از ایشان برحضر باشید اما اگر عفا نمایید و در گذرید و گناهانشان را ببخشید بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است بگمان مالها و های شما و اولاد شما آزمایش است ولی این خداوند است که مزد بزرگ به نزد می باشد پس تا حدودی که بتوانید از خدا بترسید به فرمانش گوش فرا و از او فرمان برید و در راه او خرج کنید این به خیر شماست و آنانی که از باخل و حرث نفس خیش نگه داشته می شوند پس در سگار اگر به خداوند قرضی بدهید قرضی حسنه آن را برای شما دو چند میسازد و شما را میامرزد و خداوند پاداش دهندو صاحب حلم است او دانای پنهان و آشکار و صاحب قدرت منعی و با حکمت است